فصل پنجم آیا تو کسی نیستی که تختش بر آسمان است و بر امپراتوری های تمام ملل حکومت می کند؟ از اهمیت سیاسی مذهب آشوری بابلی آگاه بود، شاه بزرگ با فرستادن کمبوجیه برای شرکت علنی در گرامی داشت مراسم سال نو آکیتو و با اعلام اینکه برگزیده مردوک است حرکات بسیار مهم و پرمعنایی انجام داده بود که بابلیان به آن دلیل سپاسگزار او بودند شاه هخامنشی همچنین از نفوذ این مذهب بر جمعیت های غیر بومی که قبلاً شاهان نینوا و بابل آنها را به منطقه میان فرات و دجله تبعید کرده بودند اطلاع داشت. شاهان آشور و کلده تبعید را بهترین وسیله سلب استقلال دشمنان خود تلقی می کردند اما از نابودی کامل ملل مقلوب امتناع داشتند. زیرا نیروی کار آنها به تحکیم اقتدار فاتحان کمک می کرد. در دنیای شرق آن دوران یعنی قرن ششم پیش از میلاد قدرت در درجه نخست با عظمت سپاه و سپس با اهمیت کشاورزان و کارگران سنجیده میشد. بنابر بنابراین انتقال هزاران خارجی به قلب سرزمین ملی خود فقط یک عملیات تنبیهی نبود. غیر از استثناعاتی نادر تبعیدیان تحت ستم قرار نمی گرفتند. همچنین برای آنکه سیاست آزادسازی موفقیت آمیز باشد لازم بود ادغام و همانندسازی امکان پذیر باشد. بابلیان برای یگان سازی و ادغام بهتر روی مذهب خود حساب میکردند. اقوام متعدد تبعید شده یا مهاجرت کرده به بابل آیین خدایان محلی را با اشتیاق میپذیرفتند. دینپذیری آنها به ایشان امکان میداد، بهتر در جامعه جدید جا بیفتند و در نتیجه از یوغ اربابان تازه رها شوند. تعدادی از خارجیان در اثر ضرورت اقتصادی اغلب داوطلبانه به بابل سرازیر شده بودند. آرامیان پر ترین و قدیمی ترین آنها جامعه کلدانی را پایگذاری کرده بودند. ایلامیان همسایگان بابل که تمدن و زبانی متفاوت داشتند، لیدیاییها ها و فریگیها ها که طی قرنها با شهر باقهای معلق تجارت داشته و در بابل اقامت گزیده بودند تا سوداگری خود را بهتر سازمان دهند مصریان که از راه دور آمده و چنان در کلده مندگار شده بودند که گویی کاروانی برای بازگشت نداشتند و بالاخره مادها که مجذوب سازمان اجتماعی اقتصادی کشوری اینچنین نزدیک و اینچنین متفاوت شده و شاید خاطری اتحاد بین دو ملت را برای قلبه بر نینوا در ذهن حفظ کرده بودند. در نتیجه ملغمه بزرگی از جماعات و ملل گوناگون و نوعی همانند سازی درونی ایجاد شده و ازدواجهای مختلط متعددی صورت گرفته بود. این سیاست یگانه سازی مشکلات چندانی حتی از نظر مذهبی به بار نیاورد. هرکس آزاد بود به شیوه خود مردوک را بپرستد. خدایی که اقامتگاه او اقامتگاه ایشان بود و در ضمن به الهه و ایزدان خاص خود نیز معتقد باشد. بابلیان بر این عقیده بودند که با گذشت زمان غیر بومیان نیز اعتقادات اولیه خود را فراموش خواهند کرد و تنها به پرستش خدای همه جا حاضر یعنی مردوک خواهند پرداخت. این مدارای مذهبی یقین آشکاری برای همه ایجاد کرده بود و آن اینکه خدایان هر یک محلی داشتند. زندگی در بابل یعنی پرستش مردوک و خاندان او الاهه نمی توانست از حدود قلمروی خود فراتر رود خدمت به مردوک در بابل مانند خدمت به او در بورسیپا نبود با آنکه در آنجا نیز مردوک ارباب مطلق محسوب میشد دو مردوک با هم فرق داشتند چون در یک محل ساکن نبودند این به ویژه توضیح دهنده حساسیت شدید مردم بین النهرین نسبت به جابجایی خدایان آنهاست و نیز توضیح دهنده بازتاب این تصمیم کورش در میان مردم که به محض ورود به بابل دستور داد خدایانی را که نبونید جابجا جا کرده بود به محلهای خیش بازگردانند. پرستش مردوک در بابل برای یهودیان مسئله به نهو دیگری مطرح بود. حتی قبل از سقوط معبد اورشلیم هنگامی که ساکنان آنجا استقلال واقعی داشتند پیامبران ایشان به آنها توصیه کرده بودند که یوق بابل را بپذیرند ارمیای نبی پس از تبعید یهودیان در نامهای خطاب به تبعیدیان آشکارا از ضرورت انقیاد و تمکین سخن میگفت. ارمیا حتی از یهودیان خواسته بود به سود بابل به درگاه خداوند دست به دعا بردارند خانه ها ساخته در آنها ساکن شوید و باقها قرض نموده میوه آنها را بخورید. زنان گرفته پسران و دختران به هم رسانید و زنان برای پسران خود بگیرید و دختران خود را به شوهر بدهید تا پسران و دختران بزایند و در آنجا زیاد شوید و کم نگردید. و سلامتی آن شهر را که شما را به آن به اسیری فرستاده بطلبید بتلبید و برایش نزد خداوند مسئلت نمایید. زیرا که در سلامتی آن شما را سلامتی خواهد بود. پس یهودیان بدون سازمان دادن مقاومت سیاسی و معنوی رو به سوی جامعه کلدانی آوردند، به مشاهده و بررسی خلقیات و آداب و رسوم مردم آنجا پرداختند تا بتوانند آنها را بپذیرند و اعتقادات مردم را به منظور یگانه شدند و ادغام در جامعه مورد مطالعه قرار دادند. نوعی روحیه شکست پذیری پدید آمده بود. تعدادی از آنها عقیده داشتند که خدایان بابل بر خدای بزرگ اسرائیل پیروز شدند و در نتیجه باید از مذهب عمومی ایزدان جدید تبعیت کرد. اما اقلیت قابل توجهی فکر می کردند که بدبختی کنونی اسرائیل به شارت دهنده فرا یک فرستاده، یک مسیح از جانب خداوند است که عظمت ملت اسرائیل را باز خواهد گردانید و به او اجازه خواهد داد به اورشلیم باز گردد و معبد سلیمان را دوباره برپا دارد. در واقع هیچ کس مذهب آبا و اجدادی خود را ترک نکرده بود. فقط بنا به مصلحت روزگار یهودیان زبان آرامی سبک زندگی و فرهنگ بابلی را پذیرفته بودند و در ظاهر به ایزدان محلی احترام می‌گذاشتند با وجود این، از همان آغاز تبعید در سال 597، در حالی که معبد اورشلیم هنوز برپا بود و نقش میانجی را میان ابریان و خدای ایشان ایفامی کرد، یهودیان قدیمی تری که در بابل مستقر شده بودند، اعلام کردند که میخواهند مانند سایر ملل روی زمین باشند و اعتقادات آنها را داشته باشند. ما، مانند ملل و اقوام دیگر روی زمین خواهیم بود و مانند آنها به پرستش چوب و سنگ خواهیم پرداخت خود از نبی که به تلاویف در نزدیکی نیپور تبعید شده بود این ادعا را محکوم کرد و به یادآوری این سخن خداوند پرداخت که خداوند یهوه میفرماید به حیات خودم قسم که از شما طلبیده نخواهم شد و آنچه به خاطر شما خطور می کند هرگز واقع نخواهد شد که خیال می کنید مثل امتها و مانند قبایل کشورها گردیده بطهای چوب و سنگ را عبادت خواهید نمود زیرا خداوند یهوه می فرماید به حیات خودم قسم که هر آینه با دست قوی و بازوی برافراشته و خشم ریخته شده بر شما سلطنت خواهم نمود و شما را از میان امتها بیرون آورده از که در آنها پراکنده شده اید جمع خواهم نمود در ظاهر پیشگویی های ارمیا و هزقیال متزاد بود مگر اطاعت از بابل به معنای پذیرش خدایان آن نبود با وجود این پذیرش اراده فاتحان فقط به معنای تغییر مذهب مغلوبان نبود تمام اقوام تبعید یا جابجا جا شده برخلاف یهودیان مردوک و ایزدان همراه او را از اعتقادات خود نراندند. از نظر آنها مانند دیگران بودند به معنای آن بود که به مذهب محلی ایمان البته یهودیان به خوبی میدانستند که اعتقاد به پرستش بتها تا چه اندازه خطرناک است پس لازم بود میان خدایان و تجلیات مادی آنها تمایز قائل شوند اما هیچ چیز به راستی مردوک را با تصویر او در هم نمی آمیخت. بتای چوبی و سنگی، پیکرها و مجسمههای موهوم سادهای بودند که برای تسکین ناشایستگی اقوام و ملل در فهم خدای انتزاعی به آنها می میشد. هیچ چیز مانع یهودیان نمیشد که فقط اهمیتی نسبی برای بتا قائل باشند. آموزش حضرت موسا بود پرستی را برای بیگانگان از مذهب یهود گناه نمیدانست و این بیگانگان اگر خارج از سرزمین مقدس بودند میتوانستند به پرستش ستارگان نیز بپردازند. بنابراین به نظر میرسید که پرستش بودها فقط مسئله اجتماعی است که به عادات فرهنگی اقوام بستگی دارد. مگر موسا پس از اعلام پراکندگی مریدان خود نگفته بود؟ و خداوند شما را در میان قوم ها پراکنده خواهد نمود و شما در میان توایفی که خداوند شما را به آنجا می برد قلیل العدد خواهید ماند. و در آنجا خدایان ساخته شده دست انسان از چوب و سنگ را عبادت خواهید کرد که نمی بینند و نمی شنوند و نمی خورند و نمی بویند. آیا این بدان معنا بود که ابریان در خارج از سرزمین مقدس خود می توانستند تابع بت باشند؟ برخی چنین باور داشتند. با این حال، ابریان بابل منتظر بازگشت به صحیون بودند. تلقی آنها نسبت به کیش بابلی پدیدهی گذرا و موقتی بود، اما یهودیان نه از لحاظ سیاسی و نه معنوی در حدی نبودند که بازگشت خود را به اورشلیم سرعت بخشند. پس آنها باید منتظر می‌ماندند و این انتظار را می آراستند. شگفت اینجا بود که کیش بود پرستی بابل به آنها امکان میداد به قانون موسی امید ببندند. قرنها بعد نویسندگان تلمود با یادآوری دوران تبعید در بابل اعلام کردند کمترین دلیلی برای بحث و موعظه علیه بودها وجود ندارد. یهودیان دیگر که مؤمنتر و تر به اعتقادات خود بودند، فکر میکردند که پس از انهدام معبد اورشلیم باید بذر اعتقاد به خدای را در بابل بپاشند. تقدیم قربانی ها خارج از معبد ممکن نبود. آیا لازم بود معبدی در بابل بسازند؟ هزقیال با درک اینکه ابریان در مخاطره قرار گرفتند تا به طور قطعی از عرض موعود که خداوند و عدش را به آنها داده بود جدا شوند، با این طرح قاطعانه مخالفت کرد او یادآور شد قادر متعال نمیپذیرد که نامش در سرزمین بیگانه تلفظ شود و با ترس از اینکه مبادا امید به بازگشت از ذهن و روح قوم زدوده و اورشلیم فراموش شود با تمام قوا با این فراموشی مخالفت کرد اگر تو را ای اورشلیم فراموش کنم پیامبر ترجیح میداد این مخاطره را بپذیرد و اجازه دهد قوم یهود به پرستش بت‌های کشوری بیگانه بپردازند اما اسرائیل و سرزمین آن را از یاد نبرند پس دو گزینه مطرح بود یا در بابل به پرستش خدای اسرائیل بپردازند و اورشلیم را فراموش کنند یا مردوک را در بابل بپرستند و خدای اسرائیل را از یاد ببرند ولی اورشلیم را فراموش نکنند حزقیال که قوم از او پیروی می کرد اولویت اورشلیم را پذیرفت پس بگو خداوند یهوه چنین می فرماید شما را از میان امتها جمع خواهم کرد و شما را از کشورهایی که در آنها پراکنده شده اید فراهم خواهم آورد و زمین اسرائیل را دوباره به شما خواهم داد در حال حاضر ابریان تبعیدی معبدی ندارند چگونه میتوان فقط با امید به بازگشت اعتقادات خود را حفظ کرد چگونه به این پرسش چالشگرانه کماکان ادامه دهند جز تو ای خداوند بزرگ چه کسی خدای آسمان و زمین است بسیاری کسان با احترام گذاشتن به بت‌های بابلی ضمن حفظ اعتقاد به اینکه خدای آنها یگان خداوند است راه حلی را برگزیدند که از لحاظ سیاسی رضایت بخش بود در نظر بابلیان این یهودیان بی خدا نبودند. آیا یهودیان به یاد می آوردند که دو هزار سال پیش ابراهیم بنیادگذار قوم آنها بودهایی را که پدرش در اور کلده ساخته بود خراب کرد؟ آیا آنها هنوز به خاطر داشتند که نخستین رئیس قوم آنها از صحرا گذشته بود تا دودمانی به وجود آورد که مذهب اصلی آن امتنا از پرستی بود؟ پسران اسرائیل پس از مسافرت طولانی خود نه تنها دوباره خود را در کلده یعنی محل اولیه حرکت خیش یافتند، بلکه مشاهده کردند که نسبت به بودها و حتی بود پرستی دیدگاهی مبهم دارند. شاید مسیر معنوی ایشان آنها را در مقابل خطر پرستش چوب و سنگ مسونیت بخشیده بود، هرچند که می توانستند بدون مخاطره طوری رفتار کنند که گویی احترام آنها نسبت به بتها بی اهمیت است. از آنجا که دین شهر مقدس جستجوی شکلی از پرستش را که انجام آن با تبعید سازگار باشد ممنوع نمی کرد، یهودیان به کلام پناه بردند. آنها نهادی جدید به نام کنیسه در تاریخ خود ابداع کردند، در این محل اجتماع دعا و نماز زایده شد که نوعی شیوه سرسپردگی به خداوند و بیان امید بود. سرزمین کلده با نخستین دعاها و نمازهای ابریان محروم از معبد آشنا شد. افزون بر این موسیقی نیز رفته رفته نقش مهمی در حیات مذهبی آنها پیدا کرد. در میان یهودیان تجدید حیات معنوی مهمی در مقابل چشمان پرسشگر بابلیان به وجود آمد. در حالی که کوروش مشغول سازماندهی امپراتوری بود، آنچنان که تا کنون مشرق زمین به خود ندیده باشد، یهودیان در بابل از منزلتی اجتماعی مشابه منزلت سایر اقوام غیر برخوردار بودند. یهودیان از زمان رسیدن به بابل پس از تبعیدهای پیاپی از 598 تا 581 یک امتیاز داشتند. نبو نصر آنها را در منطقه خشک اسکان نداده بود، بلکه در امتداد خابور آبراهه بزرگ کنار فرات مستقر کرده بود این منطقه در قلب فعالیت اقتصادی کشور قرار داشت و تعداد زیادی از مؤمنان به خدای موسا از قبل در آنجا اقامت داشتند اسرائیلیان کشور سامریه که تیکلاد پیلسر سوم طی سالهای 734 و 733 تبعید کرده بود و دیگرانی که در پی بزرگان خود در زمان شلمنصر در 724 در زمان سارگون در 721 و بالاخره در زمان سنخاریب در 701 پس از نبرد لاکیش تبعید شده بودند. مردم یهودیه و مردم اسرائیل در گذشته دشمنان سرسخت یکدیگر بودند. نبوخذنصر با گردآوردن و متحد کردن آنها شاید حسن نیت خود را نشان داده بود. اما سیاست او علتی استراتژیکی نیز داشت. نبوپولسر پدر فاتح اورشلیم مدتی طولانی در منطقه خابور جماعاتی را سرکوب می کرد که از پذیرش اقتدار او خودداری می‌ورزیدند و این به ویژه در مورد ساکنان شهر نیپور، کانون اصلی این ناحیه از بابل صادق بود. نبوکدنصر مایل بود به روح مقاومت این بومیان غلبه کند و وجود یک جمعیت بیگانه را بر آنها تحمیل نماید. یهودیان با رعایت کامل تعلیماتی که ارمیا به آنها داده بود، به افزایش و تکثیر جمعیت خود پرداختند. 28 روستا از مجموع دویست روستای موجود در اطراف نیپور در اشغال آنها بود. تعداد زیادی از اهالی سابق یهودیه به درودگری پرداختند و دیگران به کار کشتیرانی در رودها اشتغال داشتند و نقش مهمی در حمل و نقل آبی و مهندسی کشتی ایفا می کردند. در یهودیه رودخانه قابل کشتیرانی وجود نداشت و درست به دلیل همین تخصص که برای آنها جدید بود تعداد لاویان یعنی کارکنان روحانی به سرعت کاهش یافت. گرچه نهادهای اجتماعی ایجاد میشد و با آنکه خرید دوره اسارت پیوسته مریدان خود را برای یادآوری خاطری میهن از دست رفته گرد میآوردند، واقعیت آن بود که دیگر معبدی وجود نداشت. بدین ترتیب، یهودیان در مدتی بیش از چهل سال زندگی به نسبت مرفه داشتند. تعداد بسیار اندکی از آنها در شرایطی قرار میگرفتند که ناچار تن به بردگی بسپارند. برای محکوم شدن به بردگی نپرداختن وام یا جرایم دیگری لازم بود اما در عین حال تعداد کسانی که منزلت کامل یک شهروند را به دست آورند نیز بسیار ناچیز بود و با این عنوان نمیتوانستند در مجالس مردمی وابسته به معابد مختلف شهرها شرکت جویند بیشتر یهودیان افرادی آزاد ولی محروم از حقوق مدنی بودند از آنجا که آنها اجازه نداشتند، مالک زمین باشند، اغلب یا کشاورز بودند، یا به خدمت شاه در ارتش و ادارات در مقامهای فرودست می پرداختند. اطاعت از شاه همگان آیا به قدرت رسیدن کوروش، احساس تسلای خاطر بابلیان و امیدی که در قلب همه پدید آمده بود به معنای تغییری بزرگ بود؟ البته واقعیت آن بود که بابل استقلال خود را از دست داده است. گرچه فردی بومی یعنی گوبریاس حاکم کشور شده بود، پسر یک شاه خارجی کمبوجی شاه بود و خود کوروش بر سراسر امپراتوری فرمان میراند. پس چگونه میتوان توضیح داد که کلدانی تبارها یا خارجیانی که در زمین واحدی زندگی میکردند میتوانستند این احساس را داشته باشند که سازمان کشور تغییر نکرده است؟ حقیقت آن بود که وضع اقتصادی به طور محسوسی بهبود یافته بود. قیمت‌ها افزایش نیافته بود، بلکه داد و ستد و بازرگانی بیشتر شده و بابل به ثروتمندترین ایالت امپراتوری هخامنشی تبدیل گشته بود. مبادلات بازرگانی آهن، مس، قلع، چوب و شراب با مصر، سوریه، ایلام و لیدی جریان داشت. از مصر انواع رنگ‌ها و داروها را وارد می‌کردند. از بابل، مقادیر قابل توجهی قلات به سوی امپراتوری جدید ایران در جریان بود و بابل به صدور لباسهای پشمی می پرداخت. مبادلات فرهنگی در زمینه های اخترشناسی، ریاضیات و ادبیات جهش شایان توجهی یافته بود، ضمن آن که کارمندان ایرانی زبان آرامی را زبان رسمی خود پذیرفته بودند. با این حال متون اداری به زبان‌های محلی بخصوص بابلی اکدی و زبان سامی ترجمه میشد و به طور کلی به خط میخی و گاه خط آرامی نوشته میشد. خلاصه آنکه در تمام امپراتوری جدید کوروش ارتباط اندیشه ها بسیار آسان شده بود ایجاد واحد اداری جدید یک ساتراپی مراکب از بابل، سوریه، فنیقیه و یهودیه این احساس را به تبعیدیان می که به میهن خود نزدیک شدند. با این همه یهودیان احساسات مبهمی داشتند. مزایای تبعید آنها به ظاهر در عرصه اقتصادی و حتی تا حد زیادی در زمینه فرهنگ بود. اما از نظر سیاسی و مذهبی آنها همچنان درباره مفهوم حادثه‌ای که پیش آمده بود فکر می کردند و آن آزادی ایشان از یوق بابل بود آیا زمان استقلال فرا رسیده بود آیا لحظه تحقق وعده‌ای که اجداد ایشان به آنها داده بودند فرا رسیده بود در حالی که با ماندن در بابل از رفاه اقتصادی و توسعه فرهنگی برخوردار بودند، آزادی سیاسی چه سودی برای آنها داشت؟ آیا زیاد دیر نشده بود؟ وقتی کوروش اقتدار خود را بر سراسر بابل گسترد، امید یهودیان با یک پرسش تا حدی تعدیل شد. آیا آزادمنشی شاه بزرگ به سود آنها خواهد بود؟ وضع روحی حاکم بر مهاجرنشینهای یهودی منطقه نیپور با شادی آشکار خود بابلیان به ویژه طبقه روحانی که سقوط نبونید و رسیدن کوروش را پیروزی مذهب و نه میهنخیش میهن خیش تلقی می‌کردند قابل قیاس نبود. کاهنان به ستایشی راستین از کوروش پرداخته بودند. آنها پیروزی فاتح بر نبونید و تدین او نسبت به خدایان را جشن گرفتند. اینکه احساسات یهودیان کمتر از شادی و اشتیاق روحانیت مردوک نمایانده شد بدان معنا نبود که آنها از امید و انتظار سرخورده و نومید شده بودند واقعیت آن است که یهودیان در حالتی از انتظار امیدوارانه به سر می‌بردند چه خواهد شد موزه ها روحانیان و مردم چه خواهد بود یک امر مسلم بود یهودیان سرانجام اطاعت از احکام سریح را ترجیح دادند هیچ شورشی، هیچ اقدامی نظم عمومی را مختل نکرد برعکس یهودیان شرافتمندانه سرنوشت خود را پذیرفتند گرچه میان بعضی از آنها بحث و جدل لفظی وجود داشت لازم بود ابریان نفرینها و خشونت های شدیدی را به خاطر آورند که علیه یهودیان باقیمانده مانده در اورشلیم انجام گرفته بود آن هم برای گرامی داشت خدای خود در سایه معبدی که هنوز برپا بود. ابریان تبعید شده در سال 598 کماکان تحت تأثیر شرایط تبعید خود اسیر بابل بودند و نسبت به ستمگران خود نفرت داشتند. ای دختر بابل که خراب خواهی شد، خوشا به حال آنکه به تو جزا دهد چنان که تو به ما جزا دادی. به حال آن که اطفال تو را بگیرد و ایشان را به ها بزند. در میان هواداران دعا برای بابل آنچنان که پیامبر در نامه مشهورش به تبعیدیان خواسته بود و کسانی که میخواستند انتقام سرنوشت خود را بگیرند تقریبا ورتهی از فقدان درک یک دیگر وجود داشت. و هنگامی که در همان دوره دو آشوبگر یهودی اخاب و صدقیا از سوی مأموران انتظامی بابل بازداشت و اعدام شدند، یکی از مشاهیر جامعه یهودیان به نام شمعیاء نهلامی از رهبران اورشلیم خواست پیامبر بدبختی را زنجیر کنند و یگان سیاست شایسته یعنی سیاست انتقام را در پیش گیرند، آنگاه ارمیا فریاد زد کیفر آنها هزار بار شایسته تر است و اگر نبو آنها را از آتش نگذرانده بود شما میبایست آنها یعنی این کفرگویان را با دست خود میکوبیدید. خداوند گفت چون که شمعیا برای شما نبوت میکند و من او را نفرستادم و او شما را وامی دارد که به دروغ اعتماد نمایید. اینک من بر شمعیا نهلامی و ذریت وی اقوبت خواهم رساند با وجود این ارمیا به رغم نقش خود در تفسیر کلام الهی آگاه بود نگرشی که از آن ستایش می کرد، مفهومی نخواهد داشت مگر آنکه همراه با امید باشد و خداوند می گوید، چون مدت هفتاد سال بابل سپری شود من از شما تفقد خواهم نمود و سخنان نیکو را که برای شما گفتم انجام خواهم داد به این که شما را به این مکان باز خواهم آورد. و خداوند میگوید که شما را از جمیع امتها و از همه مکانهایی که شما را در آنها ام جمع خواهم نمود و شما را از جایی که به اسیری ام باز خواهم آورد. اما بعضی ها فراموش نکرده بودند که کمی قبل از انهدام نهایی معبد، ارمیا در کوچه های اورشلیم با یوقی از چوب برگردن و شانه بر ضرورت اطاعت و انقیاد تأکید می کرد هنگام محاصره قطعی شهر مقدس ارمیا پیش از آن که بتواند دوباره فریاد بزند که باید از اورشلیم گریخت متهم به فرار و زندانی شد پس از مرگ جدلیا آخرین نماینده اقتدار یهود پیامبر بر خلاف میل خود در پی کسانی راه افتاد که راه مصر را در پیش گرفته بودند رؤیای عرابه آسمانی ارمیا چه نفوذی می توانست بر تبعیدیان اعمال کند؟ او باید طی سالها دور از بابل به خطابهای پرشور و تشفیق آمیز مکتوب خود قناعت می کرد، حالان که هزقیال در میان تبعیدیان به سر می برد. هر که پیامبر بدبختی به خود مطمئن و متکی به اعتقادات مذهبی خیش بود، حزقیال آسی پذیر بود، چنان که گوی پیامش نیاز به تفسیر داشت. گاه به نظر می رسید، اسیر رویدادهایی است که با گوشت و پوست خود در آنها زندگی می کند و نمی تواند آنها را به صورت دستورات رفتاری خطاب به یهودیان ترجمه کند. گرچه بعضی اوقات کلمات روشنی بیان می کرد. گاه قادر به جمبندی اندیشه خود نبود و به بیان احساسات خود با کمک ایما و اشاره بسنده می کرد. این حرکات باعث گمراهی هوادارانش می شد. وقتی سردار نبو زرادان حیکل اورشلیم را ویران کرد، هزقیال سالها بود در بابل به سر می برد. او از فاصله دور شاهد رویدادها بود. مدت چهل روز به پهلوی راست دراز کشید و نگران یهودیه بود. مدت چهل روز دیگر به پهلوی چپ دراز کشید و گناهان اسرائیل را بر خود هموار کرد. چهره او به سوی اورشلیم بود و به فرمان خداوند خیش، علیه اورشلیم پیشگویی کرد. در همان زمان همسرش نور دیده اش درگذشت. اما خداوند هر گونه سوگواری و اشک و ناله را بر او قدغن کرد. در نظر مردم بدبختی شخصی هزقیال تصویری از نمایش دردناک انهدام هیکل یا معبد بود و مردم نیز مانند پیامبر ناچار بودند عواقب خطاها و گناهان دربار سلطنتی اورشلیم را که به انهدام آن انجامیده بود به عهده بگیرند. با این حال هیچ کس اشتباه نمی کرد و همه با پیامبر هم عقیده بودند که قارت معبد و تبعید به منظور تطهیر مردم گناهکار رخ داده است. ممنوعیت لابه وزاری به معنای آن بود که رستاخیز روزی فرا می رسد. در حالی که ارمیا در نزدیک شاه یهودی زندگی می کرد و مشاور او بود، هزقیال سرشار از روح اوسیان در تمام لحظات نسبت به اقتدار سلطنتی با حقارت می نگریست. مردی که رؤیای عرابه آسمانی را داشت، پایان دوره تبعید، اتحاد ابریان و به ویژه تجدید عهدی را اعلام می کرد که تمام ملت را در کنار خداوند متحد می ساخت. و به ایشان بگو خداوند یهوه چونین می اینک من بنی اسرائیل را از میان امتهایی که با آنها رفتند گرفته ایشان را از هر طرف جمع خواهم کرد و ایشان را به زمین خودشان خواهم آورد و ایشان را در آن زمین بر کوه اسرائیل یک امت خواهم ساخت و یک پادشاه بر جمیع ایشان سلطنت خواهد نمود و را دیگر به بودها و رجاسات و همه های خود نجس نخواهند ساخت. و ایشان قوم من خواهند بود و من خدای ایشان خواهم بود. و به احکام من سلوک نموده و فرایز مرا نگاه داشته آنها را به جا خواهند آورد. و در زمینی که به بنده خود یعقوب دادم و پدران ایشان در آن ساکن بودند ساکن خواهند شد. و با ایشان عهد سلامتی خواهم بست که برای ایشان عهد جاودانی خواهد بود و ایشان را مقیم ساخته خواهم افزود و مقدس خیش را تا ابدال آباد در میان ایشان قرار خواهم داد و حزقیال که نامش به معنای خدا قوت دهده است به مردمان اقوام دیگر نیز خطاب می کرد و همگانی بودن کلام خداوند را یادآور میشد چون آنکه گویی خداوند جویای سپاسگزاری و بازشناخت اقوام و ملل دیگر بود که شرط لازم عظمت والای اوست و امتها خواهند دانست که این من هستم که خداوند هستم. شاید برای نخستین بار حزقیال نبی به این اندیشه افتاد که شایستگی فردی می تواند رستگاری را تأمین کند. تبعیید به بابل یک کیفر جمعی مرکب از مجموع روخدادهای شوم و بختیزا بود که ابریان در آن زیسته بودند و اگر خداوند گاه جویای انسان‌های نیک بود چنان که در مورد صدوم و گومورا صدق می‌کرد فضیلت آنها به همگان سود می‌رسانید اینکه شایستگی هر فرد به همان فرد سود رساند و نه به همگان، اینکه خطای هر فرد دامنگیر همه نشود پیشگویی جدیدی در دوره تبعید بود. یعنی هنگامی که معبد دیگر نمی توانست نقش خود را ایفا کند و به معنای پذیرش اهمیت رفتار فردی انسانها تلقی می شد. خداوند پس از اعلام انهدام کشوری که دچار بیماری و جانوران وحشی شده است، خطاب به هزقیال می گوید، اگرچه این سه مرد یعنی نوح و دانیال و ایوب دران باشند، ایشان فقط جانهای خود را به ادالت خیش خواهند رهانید، ایشان پسران و دختران را رهایی نخواهند داد، ایشان به تنهایی رهایی خواهند یافت، همچنین هزقیال تسریح می کند که پدران انگور ترش خوردند و دندانهای پسران کند گردید. اینک همه جانها از آن منند چنان که جان پدر است همچنین جان پسر نیز هر دوی آنها از آن من باشند. و پیامبر نتیجه می گیرد هر که گناه کند خواهد مرد. پسر متحمل گناه پدرش نخواهد بود و پدر متحمل گناه پسرش نخواهد بود. انگام تبعید در بابل انسان یهودی دیگر فقط بخشی از سرنوشت جمعی نیست. رستگاری فردی امکان پذیر شده است. احیای اورشلیم که هزقیال اعلام کرده است البته به تمام ابریان و حتی تمام اقوام و ملل روی زمین مربوط می شود اما در عین حال وابسته به کردار هر فردی است که جامعه را تشکیل می دهد. انسان در تبعید به خوبی می فهمد، پیوندی وجود دارد که نه تنها قادر متعال را به امت و قوم خود و نه فقط به تمام ملل بلکه به کل خلقت ارتباط می دهد هزغیال می خواهد بدین ترتیب وجود و خسلت بنیادی وضع انسانی را نشان دهد حضور خداوند که گیاهان را پرورانده حامی تمام پرندگان است و در عین حال با آسمان و اعماق زمین ارتباط دارد نشان دهنده همین اراده به تاکید وجود خدای حافظ انسانیت است اما در نظر مردم بابل به خصوص رؤیای عرابه آسمانی تعلیمات متعالی حزقیال را روشن می میکند حزقیال که از پنج سال پیش یعنی در سال 593 به زمین بیگانه آمده بود اعلام میکرد کرد آسمان ها گشوده اند و من صاحب وحی الهی بودم در اینجا مسئله وجود یک استعاره آرفانه و رمزی مطرح نیست بلکه به سنت ابرانی مسئله یک عمل مشخص مطرح است پیامبر در آسمان ای می بیند و توصیف می کند این بینش یا وحی و الهام به همان اندازه ی خلقت عالم عمیق و اسرارآمیز است. زیرا آنچه در برابر حزقیال ظاهر شده است آشکار کننده ی طبیعت است با این حال پیامبر خدا را ندیده است. ظهور عرابه آسمانی و خدا که گامهای ابریان را در طول بیابان سینا هدایت کرد ماهیت همسانی ندارد. بینش و الهام هزقیال مرموز است حالان که بینشی که فرزندان و اعقاب ابراهیم در بیابان داشتهاند روشن است. روایت ابرانی تصریح می کند آنچه هزقیال روزی در آسمان دید با آنچه همه مردم اسرائیل روزی در زمین دیده بودند برابر نیست. هزقیال و مسلمان دیگران بیا خدا را ندیدند بلکه تصاویری از خدا را دیدند. آنها مانند انسانهایی بودند که با برخورد به یک شاه در میان خدمتگذاران خود باید بپرسند کدامیک از شما شاه هستید. تضادی مطلق مردم به هنگام عبور از دریای سرخ احتیاج نداشتند بپرسند چه کسی شاه است؟ به محض که او را دیدند او را شناختند و هر کس دهان گشود و گفت این خدای من است من او را تکریم خواهم کرد حتی کمترین خدمتگذاران در دریای سرخ آنچه اشیا، حزقیال و دیگران بیا هرگز ندیده بودند مشاهده کرد آسمان ها در برابر حزقیال گشوده شدند حالان که او دور از حیکل اورشلیم بود تا به خوبی معلوم شود که حضور الهی در تاریخ اسرائیل همیشه بود، به خصوص هنگامی که خطری آن را تهدید می کرده است. عرابه به هزقیال صاحب وحی اعتبار بخشید و به مردم یادآور شد که آنها وانهاده نشدهاند. از آن لحظه برای هزقیال هیچ چیز مانند گذشته نیست. او این یقین شگفت و مطلق را پیدا کرده که خدای اسرائیل در تمام دوره تبعید با مردم خواهد ماند. خدایی که جز خدای حمایت کننده نمیتواند باشد. اما این آگاهی در این حال شکنندگی پیامبر را توضیح میدهد. در برابر گرایش های قوم خویش، برای ادغام و یگانه شدن با جامعه جدید در فقدان هر گونه معبد پیامبر فقط میتواند اطمینان دهد چیزی را که دیده خدا نیست بلکه وحی الهی است. یعنی الهامی که از سوی خداوند فرستاده شده است. تهدیدی که روی قوم او سنگینی می کند به حد کافی مهم هست که خدایش تصمیم بگیرد به وسایلی مشابه آفرینش گیتی متوسل شود شاهکار آغاز جهان و شاهکار عرابی آسمانی از یک مشیت و اراده سرچشمه می گیرند اما محتوای وحی بیگمان منصوب است به الهام او از هنر استوره و آین های کشوری که پیامبر در آن زندگی می کند، یعنی بابل موجودات بالداری که هزقیال در گذشته دیده است، چهره ای داشتند که روح یک انسان، یک شیر، یک گاو نر و یک عقاب در آنها قابل تشخیص بود. این مضمون چهار مرکزی در آفرینش های هنری متعدد آشوری بابلی به ویژه در نینوا و در خرصاباد آشکار بود که هزقیال هنگام تبعید و البته در بابل مشاهده کرده بود. به خصوص این ثابت میکرد که خدای حزقیال متفاوت با الهه های دیگر میتوانست از معبد و محل خود هیکل اورشلیم دور شود و چهرش را به افقهای دیگر به چهار گوشه زمین بدوزد. به علاوه او یک بار دیگر بر خسلت جهانی آنچه تصویر آتشین او بر پیامبر ظاهر شده بود تأکید میکرد. اما این تخت است که در الهام او نکته اساسی را تشکیل میدهد. پس نگریستم و این بر فلکی که بالای سر کرروبیان بود چیزی مثل سنگ یاقوت کبود و مثل نمایش تخت بر زبر آنها ظاهر شد. یهودیان بابل با وجود حزقیال میدانستند که خطاهای ایشان هرچه باشد باز آنها در سرزمینی بیگانه رها نشودند. تبعید آنها بالاخره پایان خواهد یافت و شناخت خداوند به همگان اعطا خواهد شد. آنها همچنین می‌دانستند که خدای آنها می‌تواند به طور مشخص در تاریخ افراد بشر تجلی یابد و بر حسب طرح و نقشه خیش در ارتباط با سرشت انسان جریان تاریخ را قطع کند یا شتاب بخشد تا در هم بشکند. اثر انجام اینکه وحی به آنها آموخته بود که خدای آنها می‌تواند به اشکال گوناگونی متجلی شود که نشان دهنده خصلت حمایت کننده اوست. حزقیال در بهار سال 571، 22 سال پس از دریافت وحی، هنگامی که نبوکدنصر هنوز پادشاه بابل بود، در کرانه خوبار درگذشت. پس او نه سقوط بابل را دید و نه شاهد های آزادی بود که این حادثه اعلام میکرد. او فقط صنعتگر بزرگ استمرار بود. کسی را از شمال برانگیختم و او از مشرق خواهد آمد حفظ موجودیت باقیماندن ماندن در هویت خیش و ادامه دادن به حیات فضایلی بود که یهودیان در زمان حزقیال از آنها الهام می گرفتند با این حال اعلام و پیشگویی آزادی آنها را به شور می آورد و تحریک می کرد شکل دگرگونی که پیامبر خبر آن را داده است چگونه خواهد بود؟ آیا آنها باز در حادثه مهمی نظیر گشوده شدن آبهای دریای سرخ شرکت خواهند جست؟ آیا خدای ارتشها مستقیماً دخالت خواهد کرد و بابل را ویران می‌کند تا قوم خود را آزاد سازد؟ در این دوره پیامبری جدید جانشین هزقیال بود. او به انتظار ارفانی یهودیان بعدی تاریخی می‌بخشد و شکل مشخصی به امید می‌داد. نام او نیز اشعیا بود و سخنانش بازتاب اشیای دیگری بود که دو قرن قبل در زمان شاه حزقیا و سنخاریب از دوام و بقای اورشلیم در برابر چشمداشتهای خطرناک آشوریان و بابلیان سخن گفته بود. اشعای دوم از هنگامی که کوروش با استقرار در اکباتان شروع به پیشرفت کرد تا هنگامی که شاه ایران وارد بابل شد به پیامبری پرداخت. ایای دوم در آغاز مانند ارمیا و هزقیال باید بر سرخوردگی و نومیدی یهودیان قلبه می کرد. او کوشید اسیران را تسکین دهد زیر آنها احساس می کردند که خدای آنها در دور دستها قرار دارد، به قوم خود علاقه ندارد و به راستی نمی خواهد عظمت و آزادی را به آنها بازگرداند. پیانبر به طور خستگی ناپذیری پیوسته تکرار می کرد آن کسی که آسمان و زمین را آفریده است، آن کسی که اسرائیل را برگزیده است، هیچگاه آفریده خود را فراموش نخواهد کرد. اما مردم در مقابل استدلال می کردند، آن خدایی که قربانیان ابریان را در زمان خوشبختی پذیرفته، در عوض چیزی به آنها نداده و تبعید قوم خود را تحمل کرده است. اشیای دوم در پاسخ رفاه شده به اسرائیل و وقوع معجزات فراوان در طول تاریخ آن را یادآور میشد. اما یهودیان از اشیا میپرسیدند پرسیدند اکنون که بابل را نه خدای اسرائیل بلکه یک کافر آزاد کرده است چه اتفاقی خواهد افتاد؟ میان کوروش پارسی و وعده های آزادی ارمیا و هزقیال چه رابطه ای می تواند وجود داشته باشد؟ آنگاه، اشیاء دوم پیشگویی خود را در سال 546 یعنی هنگامی که کورش وارد سارت شد به آنها یادآور میشد کیست که کسی را از مشرق برانگیخت که عدالت او را نزد پاهای وی میخواند. امتها را به وی تسلیم می کند و او را بر پادشاهان مسلط می گرداند من که یهوه و, و اول و با آخرین میباشم من هستم این دادگری که از مشرق فراخوانده شده و سرور شاهانی چون آستیاغ، کرزوس و شهریاران بسیار دیگر شده بود اگر کوروش نبود پس چه کسی بود؟ پیامبر سخن الهی را از سر گرفت و افزود خداوند میگوید کسی را از شمال برانگیختم و او خواهد آمد و کسی را از مشرق آفتاب که اسم مرا خواهد خواند و او بر سروران مثل برگل خواهد آمد و مانند کوزگیری که گل را پایمال کند. مگر کوروش همان آریایی تبار شمالی نبود که از جانب شرق که خود و اطرافیانش مستقر شده بودند استیلا یافت آیا کوروش از سوی خدای اسرائیل برگزیده شده بود آیا اشیای دوم فقط به بیان همین نکته قناعت کرد که او حوادث را پیشگویی کرده و از پیش دیده است که کوروش برای انجام یک رسالت الهی برگزیده شده است؟ چگونه چنین چیزی ممکن بود؟ چون کوروش خدای یهودیان را نمی شناخت و نخستین دغدغه او هنگام ورود به بابل احترام به خدای مردوک و انجام آینهای او بود؟ آنگاه پیامبر پاسخی محتاطانه و استوار داد. خدایان بابل پیروزی كورش را پیش بینی نکرده بودند. روحانیت آنها پس از پیروزی كورش شاد شد و از آن بهره گرفت، اما خدای بزرگ اسرائیل این پیروزی را پیشگویی و اعلام کرده بود. سرانجام اشعیا دوم اعلام کرد این پیشگویی الهی چیزی نیست جز آن که برتری خدای اسرائیل را بر خدایان و بت‌های دیگر نشان میدهد. مهم آن است که خدای متعال کوروش را انتخاب و هدایت کرده است و پیروزی از پس پیروزی به او اعطا می کند. او با اشغال بابل بالاخره روزی به رسالت حقیقی خود یعنی آزاد کردن یهودیان پی خواهد برد. خدای ابریان نه اولین خدا چون خدایان دیگری جز او وجود نداشتند بلکه خدای یکتایی بود که برای نخستین بار پیروزی های فاتح را اعلام کرده بود. عشقی های دوم کوروش پارسی را چنین به یهودیان معرفی می کند اینک بنده من که او را دستگیری نمودم و برگزیده من که جانم از او خشنود است من روح خود را بر او می نهم تا انصاف را برای امتها صادر سازد پس کوروش وظیفه عالی قضاوت و صدور انصاف را به نام خدای اسرائیل بر عهده دارد. یعنی باید ادالت را پیروز گرداند و در نتیجه آزادی یهودیان را به آنها باز گرداند. کوروش امکان برقراری حقیقت را فراهم می کند و بدین ترتیب اقوام مختلف حقوق مردم یهود را باز خواهند شناخت. اونه خرد شده را نخواهد شکست و فتیله ضعیف را خاموش نخواهد ساخت تا ادالت را به راستی صادر گرداند عشقی دوم در اینجا به مضمونی اشاره می کند که برای یهودیان تبعیدی آشنا با آداب کلدانیان قابل درک است چون نی و فتیله برای بابلیان ابزارهای برقراری ادالت در دادگاه است اما آنچه اساسی است اعلام ادالت راستی است که دادگری را برقرار خواهد کرد کوروش مانند فاتحان دیگر که بر اسرائیل مسلط شدهاند رفتار نخواهد کرد. او فریاد نخواهد زد و آواز خود را بلند نخواهد نمود و آن را در کوچه ها نخواهد شنوانید. این بدان معناست که او به میان یهودیان لشکرکشی نخواهد کرد و به سرزنش علنی اطباع خود نخواهد پرداخت. و سرانجام که او مستبدانه دستور نخواهد داد که فرمانهایش را در کوچه ها فریاد بزنند و قضاوت کورش در سراسر زمین و حتی تا جزایر دوردست در سرحدات جهان مسکون پذیرفته خواهد شد. اشاره به زمینهای دوردست بابل در واقع برای رفع نگرانی مردم بود. چگونه ممکن است شاه بیگانه ای که امروز حاکم بابل است به یهودیه علاقه مند باشد و چگونه میتوان امیدوار بود که تبعیدیان به فرمان او به سرزمینشان باز خواهند گشت. پیشگوییش ایای دوم به آنها اطمینان خاطر می دهد. درست از آن رو که کورش فراخوانده شده و برانگیخته شده است تا بر سراسر زمین حکومت کند بیانبر برای قلبه بر ناباوری ابریان یادآور می شود که خداوند خالق همه چیز چگونه خود را بر کورش آشکار کرده است. خدا یهوک آسمانها را آفرید و آنها را پهن کرد و زمین و نتایج آن را گسترانید و نفس را به قومی که در آن باشند و روح را بر آنانی که در آن سالکند کند چنین چونین میگوید. من که یهوه هستم تو را به عدالت ام و دست تو را گرفته تو را نگاه خواهم داشت و تو را عهد قوم و نور امتها خواهم گردانید و آنگاه اشعیای دوم ادامه میدهد که این خداوند ابدی است و كورش را برگزیده و او را به عدالت فراخوانده و دست او را گرفته و نگاه خواهد داشت و او را عهد قوم و نور امتها خواهد گردانید برای فهم بهتر کوروش خداوند با کلام خود به اعتقادات شاه ایران اشاره می کند که بر اساس آن انسان در هر چیز نفخه الهی می بیند. همچنین اشیای نبی برای آن که به کوروش نشان دهد گزینش او واقعی است از استعاره مرسوم در بابل استفاده می کند که خدایان دست کسی را که برگزیده اند می گیرند. می دانیم که کوروش در استوانه خیش میگوید گوید که خدای مردوک دست او را گرفته است. خدای مردوک همه کشورها را دربر گرفت و در جستجوی شاهزادهی دادگر برآمد. شاهزادهی که با قلب خود او را هدایت کرد و دستش را گرفت. او را به نام خواند کوروش شاه آنشان و او را به سلطنت منصوب کرد. عشقی دوم اشاره دقیق دیگری به اعتقادات کورش می کند. من یهوه هستم و دیگری نه پدید آورنده نور و آفریننده زلمت سانع سلامتی و آفریننده بدی من یهوه سانع همه این چیزها هستم کوروش مانند همه کسانی که به اهورا مزدا اعتقاد دارند فکر می‌کند جهان حاصل نبرد میان نیکی و بدی و نیروهای نور و ظلمت است و اینکه نور باعث نیکبختی و ظلمت موجب شوربختی است اگر خدای اسرائیل در نظر او حاکم بر مجموع این نیروها جلوه کند نه تنها خدای قابل درک برای کوروش است بلکه خدایی حاکم بر تمام جهان و به ویژه حاکم بر نبردی است که بنا اعتقادات ایرانیان نور را در مقابل ظلمت قرار می دهد. خدای اسرائیل خدای سپاهیان آسمانی و فرمانروای نبردهای میان روز و شب است در اینجا باز پیامبر میخواهد به مردم نشان دهد که خدای اسرائیل با اعتقادات همه و به ویژه کسی که برانگیخته شده تا ابریان را نجات دهد آشناست. با این حال، کوروش خدای یهودیان را نمیشناسد. من یهوه هستم و دیگری نیست و غیر از من خدایی نی. من کمر تو را بستم هنگامی که مرا نشناختی تا از مشرق آفتاب و مقرب آن بدانند که سوای من احدی نیست ولی این بدان معنا نیست که کوروش فاتحیست که نسبت به سرنوشت حقیقی اسرائیل بیگانه است کوروش با برگزیدگی خیش نه تنها شاه اسرائیل از اعقاب داوود بلکه شاهی مشروع و برحق است و تو را اهد قوم و نور امتها خواهم گردانید بدین ترتیب قوم ها استقرار مجدد اسرائیلیان را خواهند دید که به برکت وجود کورش خانه ظلمت یعنی بابل را ترک خواهند کرد تا به خانه نور یعنی اورشلیم بروند در حال حاضر فقط مقدر شده است که کوروش رهایی بخش باشد هنوز مسئله اتحاد امت مطرح نیست مسئله بازسازی هیکل اورشلیم نیز هنوز مطرح نیست با این حال کوروش فرستادی خداوند و تطهین شده و مسیح اوست خداوند به مسیح خیش یعنی به کوروش که دست راست او را گرفتم تا به حضور وی اممتا را مغلوب سازم و کمرهای پادشاهان را بگشایم تا درها را به حضور وی مفتوح نمایم و دروازه ها دیگر بسته نشود چنین میگوید که من پیش روی تو خواهم خرامید و جاهای ناهموار را هموار خواهم ساخت و درهای برنجین را شکسته پشت بندهای آهنین را خواهم برید و گنجهای ظلمت و خزاین مخفی را به تو خواهم بخشید تا بدانی که من یهوه که تو را به اسمت خانده ام خدای اسرائیل می باشم. با خاطر بنده خود یعقوب و برگزیده خیش اسرائیل هنگامی که مرا نشناختی تو را به اسمت خواندم و ملقب ساختم سرانجام اشیای دوم بر آن می شود که طرح الهی را در مورد کوروش فاش کند خداوند از زبان پیامبر چنین میگوید من درباره کوروش می گویم او شبان من است و تمامی مسرت مرا به اتمام خواهد رسانید و درباره او شلی میگویم که بنا خواهد شد و درباره هیکل که بنیاد نو نهاده خواهد گشت بدین گونه کورش مردی است که برای اجرای مشیت و تقدیر الهی ظاهر می شود مرغ شکاری را از مشرق و هم مشورت خیش را از جای دور می خوانم من گفتم و البته به جا خواهم آورد و تقدیر نمودم و البته به وقوع خواهم رسانید. این منم، این منم که سخن گفتم. آری من او را برانگیختم، من تحکم نمودم و من او را خواندم و او را آوردم تا راه خود را کامران سازد. و خدای اشیا تا آنجا پیش می رود که رسالت کورش را دقیقا معین می کند. این اوست که شهر مرا بنا کرده. از را آزاد خواهد نمود، اما نه برای قیمت و نه برای هدیه. یهودیان به رغم تلاشهای پیامبر، به خصوص به بعد سیاسی سخنان او توجه دارند. آری کوروش ممکن است آنها را آزاد کند، حتی ممکن است از خدای آنها الهام گرفته و ابزار کور او باشد. اما چگونه میتوان پذیرفت که این آریایی بتواند بازوی خداوند فرستاده و مسیح خدایی باشد که نسبت به او بیگانه است؟ این شاه حخامنشی از اعقاب داوود نیست؟ آیا اشیای دوم با مسیح نامیدن کوروش مرتکب خطای فاهش نشده است؟ آیا او برداشتن یوق بابلیان را با رهایی تمام انسانها در هم نیامیخته است؟ هیچ چیز ثابت نمی‌کند که فتح و گشودن مرزهای بابل امکان بازسازی معبد اورشلیم را خواهد داد. چگونه یک زندیق هر قدر هم که از بزرگوارترین شاهان باشد می‌تواند معبد شهر مقدس را از نو بسازد؟ پیامبر به نحو خستگی ناپذیری پیوسته تکرار می‌کند که کورش از سوی خداوند برگزیده شده است. چه قدرت دیگری بجز قدرت این پارسی می بر بابل مسلط شود؟ اگر خداوند اسرائیل در کنار و پشتیبان او نبود چگونه شاه بزرگ می توانست بر این همه امپراتوری ها غلبه کند؟ مگر او نبود که دشمنان خیش را چون کاه در باد پراکنده کرد؟ آیا خداوندی که آسمان و زمین را خلق کرده و قوم اسرائیل را برگزیده است نمی تواند هر کسی را که به نظرش شایسته بیاید برای انجام نقشه خود منصوب کند؟ پس ابریان به چه جرأتی درباره گزینش و مشیت خداوندی به بحث می پردازند؟ لجوشترین ابریان دیگری را پیش کشیدند چگونه میتوان باور کرد که کورش مسیح باشد در حالی که بابل هنوز بابرجاست؟ مگر ارمیای نبی با استواری و هزقیال نبی با احتیاط پیشگویی نکرده بودند که شهر های معلق ویران خواهد شد؟ مگر پیشبینی نشده بود که بابل به سرنوشت نینوا و چار می شود و با کلنگ ویرانگران و حجوم شغالان از بین خواهد رفت؟ اما آیا استعاره ی حکایت یونس نبی در سالها بعد هنوز صادق است؟ آیا خداوندی که گام های مردی را در کام نهنگ هدایت کرد به این دلیل از ویران کردن نینوا امتناع کرد که در میان دیوارهایش مردمان ناشایستی وجود داشتند که دست راست خود را از دست چپ تشخیص نمی‌دادند؟ خداوند به این ترتیب به اهدی که فردای طوفان نوح بسته بود، حامی تمام مخلوقات بود. آیا این امر در مورد بابل صدق نمی کند؟ بیشتر ابریان چه آنهایی که استدلالهای پیامبر خود را پذیرفته و چه آنهایی که نپذیرفته بودند و به مشاجرات کلامی علاقه داشتند، سرانجام رسیدن کوروش را خبری بسیار خوب تلقی کردند. فرمان کوروش در برابر این امید که پیامبر خدای بیگانه با بیانی بسیار پرستایش پرورنده بود، کوروش چه واکنشی نشان خواهد داد؟ فاتح مشرق زمین از مدتها پیش تصمیم گرفته بود راه‌های آزادی را به روی اقوام گوناگونی که بر آنها تسلط یافته بود، بگشاید. اما چرا امروز تن به این خطر میداد که ابزار دست خدای ای تلقی شود در حالی که تمام خدایان و الهه برای او ارزش یکسانی داشتند؟ با وجود این، کروش نمیتوانست در برابر اندیشه امپراتوری جهانی بی تفاوت باشد. آن امپراتوری که اشعیای نبی او را فرا خوانده بود تا بر آن حکومت کند، او ضعیف نخواهد گردید و منکسر نخواهد شد تا انصاف را بر زمین قرار دهد و جزیره ها منتظر شریعت او باشند. آیا این سخن هوشدار دهنده پیروزی و افتخار نبود که شاه بزرگ از آن الهام می گرفت؟ کوروش تصمیم گرفت. ای صادر کرد و فرمان داد بر استوانهای سفالی نقش کنند که او اراده کرده است به مللی که تا کنون تحت اقتدار شاهان بابل زیسته اند، اطمینان دهد که می توانند به وطنهای خود بازگردند و خدایان خیش را در آنجا مستقر سازند. در این حال او در این اعلامیه میپذیرد پذیرد که قدرت کنونی خود را مرهون خدای بزرگ است و سلسله او از ایزدان برکت یافته است. من کوروش هستم، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه نیرومند، شاه بابل، شاه کشور سومر و اکد، شاه چهار گوشه عالم، پسر شاه بزرگ کمبوجیه، شاه شهر آنشان، نوه شاه بزرگ کوروش، شاه شهر آنشان، نواده شاه بزرگ چیش پیش، شاه آنشان، فرزند ابدی سلطنتی که بعل و نبو سلطنت او را دوست دارند، و از پادشاهی او در قلب خود شادمانند هنگامی که من با صلح وارد بابل شدم و با شادی مقرر پادشاهی خود را در کاخ شاهزاده قرار دادم آنگاه مردوک خدای بزرگ قلب گشوده بابلیان را به من متمایل کرد و هر روز من به پرستش و ستایش او می‌پردازم من در بابل و در تمام شهرهای آن مراقب رستگاری و سلامت اهالی بابل بودم تا مسکن آنها به میل خدا همچون یوقی نباشد که برای آنها مناسب نباشد. من ویرانه آنها را آباد کردم، فقر آنها را بهبود بخشیدم. مردوک خدای بزرگ از اعمال پریزکارانی من شادمان شد. خدایانی را که در آنجا ساکنند، من به محل آنها بازگرداندم، و مسکن آنها را برای ابد بزرگ ساختم من تمام مردم آنها را گرد آوردم و به محل اقامت خود بازگرداندم اظهارات کورش از دیدگاهی نوین درباره شخصیت بشری نیز حکایت دارد همه انسانها ارزشی برابر و بنیادی دارند هر کس می بنا به گزینش خود خدا را بپرستد آزادی حقیقی آگاهی حق تصاحب و حق زندگی سلحامیز در هر کشور مورد نظر برای همگان پذیرفته شده است. من برای همه انسانها آزادی پرستش خدایانشان را برقرار کردم و فرمان دادم که هیچ کس حق ندارد به این دلیل مورد بدرفتاری قرار گیرد. کروش اعلام می کند که مالکیت هر کس باید محترم شمرده شود. من فرمان دادم که هیچ خانه‌ای ویران نشود و هیچ ساکنی از آن محروم نگردد. سرانجام، کوروش صلح را هدف اصلی سلطنت خود و عنصر اساسی تعادل اجتماعی می‌شمارد. من صلح و آسایش را برای تمام انسانها تضمین کردم. اهالی بابل، خارجیانی که در شهر بزرگ و تمام کشور زندگی می‌کردند و به ویژه یهودیان بدون تردید این اظهارات مربوط به آزادی فردی و جمعی را بازتابی از متون باستانی تر یافتند. قانون همورابی که حدود سال 1760 یک شاه بابلی آن را تدوین و صادر کرده و قانون موسا که حدود سال 1300 بر ابریان نازل شده بود آیا هر دو ملهم از همین اراده به تضمین حقوق انسان و تأمین آزادی او نبوده است؟ اما کوروش با آنکه سلطنت الهی را قبول دارد، از تکیه به یک نظریه یا اشاره به یک اسطوره اصیل و اساسی می او فقط تصمیم خود را اعلام می کند. همه کسانی که در امپراتوری او زندگی می کنند، حق دارند از آزادی کامل بهرمند باشند. چه آزادی مذهبی، چه مدنی و چه سیاسی؟ با این حال، زیگورات بزرگ بابل کوه سینا نبود و کوروش نیز موسا نبود. یهودیان پس از اطلاع از اینکه تمام ملل آزادند، به کشورهای خود بازگردند به انتظار اجرای این تصمیم و به ویژه تحقق این حسن نیت نشسته بودند. قانون اعلام شده بود و اکنون باید فرمان اجرای آن صادر میشد. یهودیان که مثل همیشه آماده سوال کردن بودند از خود می‌پرسیدند که آیا اجازه دارند که معبد خود را نیز باز سازی کنند و ظروف مقدسی را که نبوکدنصر به بابل انتقال داده بود به اورشلیم بازگردانند. کوروش در بهار سال 538 پس از صدور قانون آزادی همگانی راه اکباتان پایتخت قدیمی پدربزرگش آستیاگ و شهر بزرگ مردم ماد را در پیش گرفت. شاه آنشان که اکنون تبدیل به شاه بابل و اکد و سومر نیز شده بود این شهر کوهستانی را مقر اقامت تابستانی خود قرار داده بود کوروش نمی توانست بلند پروازی جهانی خود را فراموش کند و نه فکر تشکیل امپراتوری جهانی را کنار بگذارد یهودیان او را مسیح خوانده بودند آنها تأکید می کردند که خدای نادیده آنها نه تنها کروش را برگزیده. بلکه به او اجازه داده است به مغلوب کردن مللی به پردازد که سر راه او قرار میگیرند. امیدی که آنها به کورش بسته بودند از درخواست ساده بازگشت با خسلت اجتماعی یا سیاسی فراتر میرفت چون به نظر می رسید که آنها به بازیابی قدرت معنوی حقیقی میاندیشند. جز کشور مصر که از زمان آشور با نیپال هیچ شاه شرقی نتوانسته بودان را اشغال کند، هیچ چیز دیگری مقابل تحقق تره کوروش وجود نداشت هر بار که یک فاتح با فرائنه به مخالفت برخواسته بود مسئله دشتهای ساحلی در امتداد کشور یهودیه و فنیقیه برابر او قد علم کرده بود اکنون که کورش بابل را فتح کرده بود و به همین دلیل خود را ارباب این مناطق می یافت مصریان به آن چشم تمع دوخته بودند اما انهدام شهرهای سور و اورشلیم و تبعید اقوام ساکن در این مناطق نوعی خلای استراتژیکی ایجاد کرده بود که باید هرچه زودتر پر میشد برآوردن درخواستهای یهودیان امتیاز دوگانهای در اختیار کوروش قرار میداد هم مردم منطقه را به آنجا باز میگرداند و آنجا را مسکونی می کرد و هم احساسی از سپاسگزاری در آنها به وجود می آورد که بعدها می توانست به سود خود از آن بهره بگیرد. همچنین این امتیاز فوقالعاده وجود داشت که یهودیان او را مسیح خداوند خود اعلام کرده بودند. پس چرا آزادی این پرستندگان خدای نادیده را که از مدتها پیش از وطن خود دور مانده بودند به آنها باز نگرداند؟ شاه بزرگ، با اعتماد به خود پذیرفت که خدای ابریان تمام کشورهایی را که او بر آنها سلطنت میکرد و نیز سلطنت بر تمام جهان را از آن او دانسته است. او فرمان داد که اورشلیم دوباره ساخته شود و معبد این شهر با همه عظمت خود بازسازی گردد. کوروش پادشاه فارس چونین میفرماید. یهوه خدای آسمانها جمیع ممالک زمین را به من داده و مرا امر فرموده است که خانه‌ای برای وی در اورشلیم که در یهودا بنا نمایم پس کیست از شما از تمامی قوم او که خدایش با وی باشد او به اورشلیم که در یهوداست برود و خانه یهوه را که خدای اسرائیل و خدای حقیقی است در اورشلیم بنا نماید و هر که باقی مانده باشد در هر مکانی از مکان‌هایی که در آنها قریب می اهل آن مکان او را به نقره و طلا و اموال و چهارپایان پایان علاوه بر هدایای تبرعی به جهت خانه خدا که در اورشلیم است، اعانت نمایند. کوروش به این اکتفا نمی کند که تصمیم خود را به افراد زی علاقه یعنی فقط به یهودیان اعلام کند. او به تمام شاهان، به بابلیان و تمام کسانی که لازم میداند بدانند به تمام اتباع خود در سراسر امپراتوری اعلام میکند و این کار را چنان میکند که تمام قلمروهای روی زمین بدانند که او به کسانی که در گذشته نصر به بابل تبعیدشان کرده بود اجازه داده است که به میهن خود بازگردند وانگهی او به منشوری ساده که بر سفال کنده شده است قناعت نمی‌کند بلکه به صدور فرمان می‌پردازد یعنی اینکه خبر در سراسر امپراتوری منتشر شود فرمان کوروش نه تنها برای کسانی که در شرف بازیافتن میهن خود و بازیافتن پیوند مجددی بودند که آنها را با خدایشان وحدت می‌داد اهمیتی مذهبی داشت بلکه برای خود شاه بزرگ نیز اهمیت داشت کوروش می‌خواست به این خدایی که جمیع ممالک زمین را وعده داده بود احترام گذارد و معبدی برای او برپا دارد که جز در اورشلیم نمی باشد شاه بزرگ برای اشاره به این خدا از عبارتی استفاده کرد که ابریان قبل از تبعید به بابل استفاده می‌کردند. خدای آسمان یعنی خدای آن بالا خدای برتر خدایی که هزغیال نبی به محض رسیدن به بین نهرین او را در میان ابرها و بر فراز سر انسانها قرار داد این اصطلاح که کورش به کار گرفت یادآور خصلت متعالی خداوند بود خداوندی که دیدنش به اشکال مادی ممکن نبود بی نهایت با انسان فاصله داشت و در عین حال به او و تاریخ او بسیار نزدیک بود چنان که وحی نازل شده بر حزقیال و تصمیم شگفتنگیز اخیر کورش، آن را اثبات می کرد یعنی با سازی هیکل اورشلیم به افتخار خداوندی که رسالت کوروش بر تسلط بر جهان را پذیرفته بود انتخاب کوروش به رغم مضمون سیاسی آن اشغال جاده مصر توسط ملتی دوست و به رغم میل او در تأمین حق برگشت به میهن برای تمام ملل خصلتی مذهبی داشت در نظر یهودیان شاه بزرگ با خدای آنها پیوندی شخصی برقرار کرده بود و درست به انتظار از این خدا پاسخ میداد، اینکه خود کورش مانند همه ملل روی زمین خدای اسرائیل را شناخته بود کاروان بازگشت بزرگ بازگشتی که آنقدر یهودیان در انتظارش بودند در آنها نگرانی و تردید برانگیخت برخی در این فکر بودند که چرا باید بابلی را ترک گویند که از این پس در اختیار شاهی دوست است. عدهای دیگر که مدافعان ناشکیبای حیثیت ملی خود بودند، می‌خواستند در درجه اول ملت اسرائیل تجدید حیات کند و بالاخره بعضی دیگر که به این دیدگاه که آن را زیادی سیاسی می‌دانستند بی بودند، قبل از هر چیز تجدید حیات میهن را فرصتی غیر منتظره برای بازسازی معبد می‌دانستند تا در آنجا مطابق قانون موسا به قربانی بپردازند فرمان کوروش نه دعوتی به مهاجرت ابریان و نه به هیچ وجه فرمان اخراج ایشان از بابل بود به هیچ وجه به ذهن منجی شرق خطور نمی کرد که تبعیدیان را مجبور به بازگشت به کشورشان کند این اندیشه از قبل مطرح شده بود که امپراتوری واحدی یک پارچه است و اتباع شاه بزرگ هر جا که میل داشته باشند میتوانند سکونت کنند پس برای کوروش همین کافی بود که چندتن به رسالتی که او بسیار میل داشت عمل کنند. معبد را بازسازی کنند و امکان دهند که یهودیه تجدید حیات یابد و به این ترتیب در امتداد دشت ساحلی قدرت جدیدی متحد با پارسا پدید آورند. کوروش برای آنکه به طرح خود مشروعیت بخشد و به ویژه برای آنکه نشان دهد باستانی ترین سنت یهودیان را رعایت کرده است مسئولیت بازگشت را به یکی از اعقاب مستقیم پادشاه یهودیه سپرد شاه یهو که پسر نبو کدنسر او را از زنجیر آزاد کرده بود روزهای آخر عمر خود را با آرامش در بابل گذرانده بود یکی از فرزندان شاه سابق یهودیه که فرآورده ناب تمدن بابل بود نامی بین و نهرینی شیش بس سر داشت که نشانه احترام خانواده سلطنتی به بابل بود. با این حال، شاهزاده جوان که در زمان سلطنت نبونید به سن بلوغ رسیده بود، به نشانه احترام به شاه که ستاینده بزرگ خدای سین بود، نام خود را به شنس سر برگردانده بود. آیا ابریان به افتخار همین خدا هنگام عبور از صحرای سینا عمل نکرده بودند؟ برای اجرای فرمان شاه بزرگ مردی لازم بود که به یهودیان و سنت بابلی نزدیک باشد. وجود شناسر به این الزام دوگانه پاسخ میداد. تبعیدیان انتصاب او را برای حکومت بر یهودیه با شور و اشتیاق استقبال کردند، به خصوص که کوروش تصمیم گرفت خزانه معبد را نیز به آنها بسپارد. فکوروش پادشاه ظروف خانه خداوند را که نبوکدنصر آنها را از اورشلیم آورده و در خانه خدایان خود گذاشته بود بیرون آورد و کوروش، پادشاه فارس آنها را از دست مهرداد خزاندار خود بیرون آورده به شیش بسر بس رئیس یهودیان سپرد و عدد آنها این است سی تاس تلا و هزار تاس نقره و بیست و نه کارد و سی جام طلا و چهارصد و ده جام نقره از قسم دوم و هزار ظرف دیگر شرکت دادن همه اعقاب سلطنتی داوود در اقدامی که کورش تصمیم گرفته بود اهمیت داشت. نوه شاه یهویاکین به نام زر و بابل پسر شالتیل مأموریت یافت ترتیب ارسال اولین محموله را تحت سرپرستی عالی امویش شناسر بدهد. زر و بابل نیز درست مانند امویش نامی بابلی داشت. پس این دو مرد که مسئولیت برپایی مجدد اسرائیل به آنها سپرده شده بود، گرچه با فرهنگی بیگانه بزرگ شده بودند، امید ملت یهود محسوب می شدند. به علاوه، فرهنگ پذیری کلدانی آنها امکان میداد، هرچه آسانتر به تحقق طرح بابلیان از هر تباری که کوروش آنها را به تسهیل بازگشت فراخوانده بود، یاری رسانند. کاهنان یهودی شادی بیحد و حسری از خود نشان میدادند. شش و سر و بابل از کمک‌های کاهن بلندپایه‌ای به نام یشوع پسر یوساداق برخوردار شدند این مرد با برادرانش مأموریت داشت مذبح خدای اسرائیل را برپا دارد تا قربانی‌های سوختنی بر حسب آنچه در تورات موسا مرد خدا مکتوب است بر آن بگذارند اما در طی تمام این سالها آین قربانی متروک مانده بود و هیچ کس ترتیب آن را نمیدانست. به علاوه یهودیان قرور خاصی نسبت به خصلت معنوی مذهب خود پیدا کرده بودند حالانکه که بابلیان همچنان به قربانی کردن ادامه می دادند. پذیرفتنی نبود که بازسازی معبد با رعایت دقیق قانون موسی انجام نگیرد و از قربانی و زب سرف نظر شود پس یشوع از تعدادی از کاهنان و لاویان کمک خواست چون پدران و اجداد ایشان به انجام آیین مقدس آشنا بودند کسانی که امروز به مهاجرت فوق‌العاده به اورشلیم اقدام کرده بودند هیچ تجربه‌ای درباره آیین‌های مذهبی خود نداشتند اما همه روی یاری یشوع برای یافتن راه حلی که برای همه پذیرفتنی باشد حساب می‌کردند با این حال اکنون زمان رقابتها و سبقت‌جویی‌های مذهبی نبود فوری ترین مسئله سازمان دادن حرکت بود اکنون در سال 537 هستیم همه کسانی که تصمیم به بازگشت به اورشلیم گرفته بودند سرشار از شور و اشتیاق بودند با این حال عقیده یک پارچهی در بازگشت وجود نداشت گرچه حدود 70 سال انتظار آن را کشیده بودند کسانی که به علت جوش خوردن با تمدن بابل هنوز در حرکت تردید داشتند باید به دستور کوروش به کمک مالی برای بازسازی هیکل می‌پرداختند. البته آنها با مردانی که شاه بزرگ مأمور این رسالت کرده بود احساس همبستگی می‌کردند. گردآوری سرمایه برای سازماندهی این اولین بازگشت مبلغ قابل توجهی شد که باید در اختیار پسران بازگشت قرار می تا سالها از هر گونه نیاز مادی بی نیاز باشند. سرانجام، اولین کاروان توانست حرکت کند. در مجموع حدود پنجاه هزار نفر گرد آمدند و حرکت کردند. در میان نامزدهای عظیمت بزرگ 642 نفر نمی توانستند تعلق خود را به تبار و فرزندان موسا ثابت کنند اینها نوکیشان بودند که اعتقادات یهودی را پذیرفته و با شوق مورد استقبال آنها قرار گرفته بودند دیگران تبارشناسی روشنی داشتند بیشتر آنها متعلق به قبایل یهودا و بنیامین بودند اما در عین حال اعقاب خاندان سلطنتی اسرائیل نیز وجود داشتند که امروز متقاعد شده بودند وقتی باز سازی اورشلیم امکان پذیرد ملتی که در گذشته از مصر بیرون آمده بود وحدت و عظمت خود را باز خواهد یافت. حرکت متزمن مشکلات مادی متعددی بود. تهیه تجهیزات و تدارک آزوقه برای این همه افراد سازمان دقیقی لازم داشت. کاروان 736 اسب 245 قاطر، 35 شتر و 6720 الاق داشت. حمله ظروف مقدس نیز باید با دقت انجام می‌گرفت. کاروان در بهار سال 537 حرکت کرد و پس از چهار ماه راهپیمایی به آستانه اورشلیم رسید. یهودیان جهت معکوس همان راهی را در پیش گرفته بودند که اجداد آنها هنگام تبعید بزرگ پیموده بودند. نخست به شمال در امتداد رود بزرگ در دشت حاصلخیز سرخیز بین و پیش رفتند، سپس از بیابان سوریه گذشتند در حالی که محافظ نظامی نداشتند، زیرا امنیت کاملی بر امپراتوری حقامنشی حوک فرما بود. سرانجام، اورشلیم پدیدار شد. جز نور سفید و سرخی که تبه های شهر را هنگام برآمدن و فرو رفتن خورشید روشن میکرد هیچ نشانی از عظمت گذشته وجود نداشت از معبد یا هیکل اورشلیم واقع بر کوهی که ابراهیم میخواست پسرش اسحاق را در آنجا قربانی کند هیچ چیز باقی نمانده بود اداد اندکی یهودی در شهر باقی مانده بودند زیرا نبو نصر خواسته بود آنها را زنده بگذارد و آنها از رسیدن این انبوه جمعیت نامنتظر شگفت زده می نمودند شهر برای اسکان مهاجرانی که در سرزمین بیگانه متولد شده ولی تیه گذشت ده ها سال پیوندهای شگفت و نامری خود را با شهر مقدس حفظ کرده بودند بسیار کوچک بود چند خانواده در میان ویرانه ها مستقر شدند و بقیه در محل های اطراف در بیت لحم، بیت ایل و عریها مسکن گزیدند. در قسمت جنوب، ادومیان تمام منطقه اطراف هبرون را با اجازه نبو اشغال کرده و راه یهودیان را سد کرده بودند. با این حال، لاویان به دستور کاهن بزرگ یشوع، بدون اینکه لحظه‌ای وقت را تلف کنند در محل سابق قدس الاقداس قلب مهراب و مقر خدای خود گرد آمدند به سرعت مهرابی ساخته شد و بدون آنکه منتظر مراسم موقوفه بمانند به انجام فرایز قربانی و ذبح ابدی پرداختند که هر روز صبح و عصر نشانه تسلط الهی بر تمام مخلوقات بود از زمان انهدام معبد یهودیان باقی مانده جرأت انجام این کار را نداشتند ولی تبعیدیان بدون تردید و تزلزل آن را انجام دادند چنان که گویی می‌خواستند ممنوعیت‌هایی را که در بابل مانع آنها شده بود تا در آینهای قربانی خارجی اجرا کنند بشکنند انقلابی انجام شده بود که دستاورد یهودیان تازه از راه رسیده، یهودیان باقی مانده، اسرائیلیان بازگشته، قبایل متفرق شده در مشرق و تمامی اورشلیم یا سامریه که در امپراتوری ایران پراکنده بودند و خلاصه دستاورد همه جهودان بود. اقوام همسایه اسرائیل با نگرانی شاهد این استقرار دوباره بودند که شاید برای اولین بار در تاریخ، با اراده یک شاه صلح طلب و بزرگوار انجام شده بود با زور اسلحه اما آیا سرزمین اجدادی یهودیان راستی همان سرزمین موعودی بود که در آن شیر و اصل جریان داشت؟ ابریان بابل با بازگشت به اورشلیم شاید این احساس را نداشتند که به سرزمین وفور نعمتی رسیدند که موسی توصیف کرده بود رفته رفته به نظر می رسید اهمیت میهن ابریان نه چیزی مربوط به حاصل خیزی خاک بلکه از آن رو بود که مقدر بود سرزمین اسرائیل باشد چون به مشیت مطلق خداوند ایشان به جهودان تعلق داشت در زمانی که زر و بابل و افرادش از حدود مذبح قدیمی عبور می کردند چه اهمیتی داشت که اسرائیل سرزمین فراوانی باشد یا سرزمین مقدر؟ در افق شمال و جنوب ناظران به تدریج منقلب می شدند اجازه دهید با شما معبد را بسازیم ادومیان و موابیان به رغم دشمنی سنتی خود با قلم یهودیه علیه کسانی که به طور گروهی به کشور قدیم خود بازگشته بودند عمل تهاجمی انجام ندادند نظام ایران در ساتراپی شمال حاکم بود و باور کردنی نبود که بتوان با عملی علیه تبعیدیان قدیمی که امروز به برکت سرور امپراتوری جدید بازگشته بودند این نظام را مختل کرد. مردمی که در شمال اورشلیم و اطراف شهر مشهور سامریه زندگی می کردند ایجاد کمترین خطری برای قوم مورد حمایت کوروش نداشتند. برعکس اهالی سامریه به نظر می رسید به اعتقادات موسیی خود ادامه می دهند. آنها در بعضی موارد حتی آینهای بسیار نزدیک به آینهای یهودیان به ویژه در مورد عمل قربانی را حفظ کرده بودند با این حال آیا اهالی سامریه می توانستند خود را اعقاب مستقیم اسرائیلیانی معرفی کنند که آشوریان آنها را مغلوب و پراکنده کرده بودند؟ شلمنسر، سارگون دوم و آشوربانیپال پال به طور متوالی دهها هزار خارجی مادی، بابلی و بویژه کوتانی را به سامریه تبعید کرده بودند. این کوتانی ها که خواستگاه اصلیشان سرحدات مشترک ماد و پارس بود، به سرعت خود را با میهن جدید خیش سازگار کرده، آداب و رسوم و بعضی مراسم مذهبی آن را پذیرفته بودند. اما چون طبقه روحانی در میان آنها وجود نداشت، بدون موفقیت کوشیده بودند، مذهبی محلی به وجود آورند که هیچ کس نمی توانست به راستی آن را دریابد. در برابر این خلع معنوی، کوتانیان احساس نگرانی می کردند، هرچند که سرانجام به این نتیجه رسیدند که خدای حقیقی سامریه با آنها دشمن است و انواع حیوانات وحشی و به خصوص شیرها را برای نابودی آنها فرستاده است، کار به جایی رسید که اهالی سامری نمایندگانی به نینوا فرستادند و به شاه آشور شکایت بردند که قاعده خدای آن زمین را نمیدانند و قادر نیستند نظر موافق او را جلب کنند. سارگون دوم این شکایت را بسیار جدی گرفت چون مایل نبود سامری از ساکنانش خالی شود و اسرائیلیان بتوانند به نحوی دوباره بر آنجا تسلط یابند. پس به نظر شاه، راه درست آن بود که اجازه دهد تازه از راه رسیدگان با خدای محلی آشتی کنند. شاه آشور فرمان داد، یکی از کاهنانی را که از آنجا کوچانده اید بفرستید تا به سامریه برود و در آنجا ساکن شود و ایشان را موافق قاعده خدای زمین تعلیم دهد. به برکت وجود این کاهن توانستند از مذهب اسرائیلیان پیروی کنند به قربانی برای خدای موسا به پردازند و در گذر سالها مانند اعقاب کسانی شوند که از مصر بیرون آمده بودند بازگشت همکیشان متعدد به اورشلیم و بازسازی شهر مقدس برای اهالی سامری بی اهمیت نبود حسن نیت ایشان نسبت به اعتقادی نیمه ناشناخته به طور مستقیم شکافی را که پس از طی دهها همچنان از آن در رنج بودند، افزایش داده بود. آنها حتی دیگر خاطری از جنگ‌های مرگباری که یهودیان و اسرائیلیان را در برابر هم قرار داده بود، تا نسبت به بازگشت کنندگان به وطن از بابل همدردی و علاقه نشان دهند نداشتند. آنها خوشحال بودند که می دیدند استواری برای تایید اعتقادات آنها پدید آمده است. فقط فکر اینکه هیکل اورشلیم در آستانه بازسازی بر حسب قواعد موسایی بود، شادی بی ای در آنها ایجاد می کرد. احالی سامریه با معرفی خود و حضور در مقابل به وطن بازگشتگان مطمئن بودند انتظار آنها بیهوده از آب در نخواهد آمد. آنها، علاوه بر وابستگی و علاقه مذهبی خود که امیدوار بودند به اثبات برسانند، حرکات آشتی شاه یهودی هزقیه را به خاطر می آوردند که حدود سال 700 برای جوش دادن واقعی سنت مذهبی اورشلیم و سامریه انجام شده بود. اگر همین پادشاه نبود که به اهالی سامریه پیشنهاد کرده بود عید فس را با شکوه گرامی دارند تا بر خصلت و جنبه ملی آن تاکید شود. آیا حزقیا از ساکنان سامریه دعوت نکرده بود. ای بنی اسرائیل به سوی یهوه خدای ابراهیم و اسحاق و اسرائیل بازگشت نمایید تا او به بقیه شما که از دست پادشاهان آشور رستید رجوع نماید. آیا دو قرن بعد دادن پاسخ مثبت به این دعوت خیلی دیر بود؟ آیا سامریان به رغم دستاورد جماعات بیگانه تلاش نکرده بودند تا صادقان مذهب اسرائیل را بپذیرند و به آن احترام بگذارند؟ و این مگر یوشیا شاه یهودیه که آین الهی را به طور کامل اجرا کرده بود همین دعوت را در پایان سالهای 600 انجام نداد در حالی که کوتانیان مدتها بود به بقیه اسرائیل پیوسته بودند آیا گرامی داشت عید فص در زمان یوشیا به معنای بازگشت حقیقی یهودیان و اسرائیلیان نبود؟ بدین ترتیب شمار زیادی از اهالی سامری به اورشلیم رفتند با این اطمینان که هم از سوی به وطن بازگشتگان پذیرفته شوند و هم در بازسازی معبد شرکت داده شوند آنها به یهودیان گفتند ما همراه شما بنا خواهیم کرد زیرا که ما مثل شما از زمان اثر حدون پادشاه آشور که ما را به اینجا آورد خدای شما را میطلبیم و برای او قربانی میگذاریم. زر و بابل، یشوع کاهن و تمام بزرگان و خردمندان جماعت یهود از این گفتار سخت به حیجان آمدند. یهودیان بیشتر از آن رو خوشحال شدند که کارهای بازسازی هنوز به راستی آغاز نشده بود. اما آنها با انبوهی از مشکلات اقتصادی و سیاسی کوتانیان مواجه شدند. این مردان که خود را سامریان جدید معرفی می کردند تعدادشان بسیار بیشتر از آنها بود. پس پذیرش آنان درون جماعت جدید یهودیه به معنای استحاله خصلت قومی بود که تبعید را تجربه کرده بود. این خطر را نمیشد نادیده گرفت که تجربه کسب شده در مدت تبعید تجربه فرهنگی و مذهبی اینچونین کمرنگ شود. آیا جوش خوردن با جامعه بابلی به تبعیدیان امکان نداده بود صفات جدید هوشمندی و کاردانی کسب کنند؟ آیا تبعیدی که خدای اسرائیل خواسته بود در معرض از دست دادن تأثیرات سازنده خود نبود؟ آیا پذیرش کمک سامریان که تبعید در بابل را تجربه نکرده و خود از سرزمین بیگانه‌ای به زمین اسرائیل تبعید شده بودند فاصله گرفتن با اراده الهی نبود؟ اما از سوی دیگر آیا تخطی از دستور کورش که به خارجیان اجازه میداد در بازسازی معبد شرکت جویند جایز بود؟ مگر شاه ایران در فرمان خود اظهار امیدواری نکرده بود که فقط تبعیدیان بازسازی هیکل اورشلیم را عهده گیرند. به علاوه برداشت اولین محصولی که بازگشتگان در یهودیه کاشته بودند فاجعه آمیز بود و قحطی و گرسنگی اورشلیم را تهدید می کرد. در این شرایط چگونه میشد شد دهانهای جدید را تغذیه کرد هرچند که آنها با شور و اشتیاق آوای ستایش خداوند متعال را سر داده باشند سرانجام اینکه بازگشتگان به وطن از زمان بازگشت به یهودیه بنا به دلایلی ناچار شده بودند با اهالی سامریه مخالفت کنند کوروش در فرمان خود تصریح کرده بود که تمام یهودیه باید به تبعیدیان قدیم تعلق گیرد در حالی که اهالی سامریه برخی از مراکز به خصوص بیت ایل را اشغال کرده بودند و یهودیان فقط شهر را در تصرف داشتند. به رغم واکنش نشان ندادن سامریان این سرزمین متفاوت برای تولید آزوقه اقلیمی مساعد نداشت و اگر یهودیان با پیشنهاد سامریان مخالفت می کردند و از وخیمتر می شد. با وجود این از دیدگاه مذهبی دخالت زر و بابل و یشو لازم بود. تجربه‌ای که مهاجران در بابل به دست آورده بودند آنها را برمیانگیخت که از آیین‌های زیاد از حد محلی چشم بپوشند و درهای اعتقاد جدید خود را به روی همه اقوام روی زمین بگشایند مگر پیامبری بینام که تعلیمات او با تعلیمات اشیا پیوند دارد نگفته بود و پسران بیگانگانی که با خداوند مقترن شده او را خدمت نمایند و اسم خداوند را دوست داشته بنده او بشوند یعنی همه کسانی که سبت را نگه داشته آن را بی نسازند و به عهد من متمسک شوند ایشان را به کوه قدس خود خواهم آورد و ایشان را در خانه عبادت خود شادمان خواهم ساخت و قربانی سوختنی و زبایه ایشان بر مذبح من قبول خواهد شد زیرا خانه من به خانه عبادت برای تمامی قومها مسما خواهد شد همچنین آیا میشد از تعلیمات موسا در مورد یترون خارجی چشم پوشید که پدرزن او بود و از ابریان نبود مگر او به کسانی که از مصر خارج شده بودند نپیوسته بود مگر او در راه خدا قربانی نکرده بود و در خوردن خوراک آیینی با موسا و هارون کاهن بزرگ شرکت نجسته بود و بدین ترتیب تعلق خود را به جماعت اسرائیل نشان نداده بود و یترون پدرزن موسا قربانی سوختنی و زبایه برای خدا گرفت و هارون و جمیع مشایخ اسرائیل آمدند تا با پدرزن موسی به حضور خدا نان بخورند برعکس در حالی که یهودیان در برابر حادثه‌ای با این اهمیت مانند پیدایش جهان یا خروج از مصر قرار داشتند آیا امکان داشت خطر طبیعت زدایی از قوم برگزیده را پذیرفت حادثه مهم بابل بنا اراده الهی به این قوم حیات مجدد بخشیده بود چگونه میشد آرزوی جدید جهان نگری را با الزامات خاص نگری آشتی داد آیا قانون موسی بر اساس خلوص فضیلت اساسی در مقابل انواع نفرت به ویژه آیین بت پرستی ریزی نشده بود اگر پیام تورات جهانی است و در نتیجه به تمام بشریت مربوط می شود، حامل آن باید قوم خاصی باشد و بر این قوم است که تعریف خاص خود را حفظ کند در مقابل، پیامی جهانی که سود آن از کسانی که با صداقت هوادار آن هستند، دریق شود چه معنایی میتواند داشته باشد؟ چگونه میتوان از نوکیشان این حق را که خودشان پیامگیر حقیقت باشند، دریق کرد؟ با توجه به این که اسرائیل قوم کاهنان و ملتی مقدس است، باید به همین قناعت کند که انسانهای دیگر را فقط ابزار دست مشیت الهی بداند، نه بندگانی که به نوبه خود قادرند در بازسازی معبد شرکت جویند آیا این پذیرفتنی است که جماعت اسرائیل را از کسانی که نه تنها خدای راستین را میشناسند بلکه مایلند جزو کاهنان باشند جدا کرد؟ نه زر رو بابل موساست و نه یشوع هارون در حال حاضر به دستور کوروش یهودیان باید معبد را دوباره بسازند چگونه یهودیان می توانند این رسالت را انجام دهند اگر اقوام دیگر با وجود حسن نیت بخواهند مزاحمانها آنها شوند؟ و چگونه خارجیان را میتوان توان تقضیه کرد در حالی که قهتی حاکم بر اورشلیم کیفری الهی برای بعضی از بازگشتگان مسامه کار تلقی شده است؟ پس از شور و شوق روزهای نخست، رفته رفته در مورد تأسیسات مادی دچار نگرانی شدند و تا حدی بازسازی مذبح را پشت گوش انداختند. حجی پیامبر اعلام می کرد سبب آن است که خانه من خراب می‌ماند و هر کدام از شما به خانه خیش می تابد. از این سبب آسمانها ها به خاطر شما از شبنم باز داشته می شود و زمین از محصولش باز داشته می گردد. و من بر زمین و بر کوه ها و تمامی مشقت های دست ها خشکسالی را خواندم. سامریان می توانستند به خود ببالند که با بعضی از یهودیانی که در دوره تبعید در اطراف اورشلیم باقی مانده بودند، روابطی بسیار خوب داشتند. حتی ازدواج هایی میان اعضای دو جماعت که گاه هنگام جشن های بزرگ دور هم جمع می شدند، صورت می گرفت. مگر سامریان و یهودیان به قوم واحدی تعلق نداشتند مگر آنها با خاطره فاجعه بزرگی که بر ملت یهود هنگام سقوط اورشلیم وارد آمده بود با هم پیوند نداشتند این واقعیت که سامریان از سرنوشتی که نبوخذنصر برای ساکنان اورشلیم تدارک دیده بود در امان مانده بودند هیچ چیز را عوض نمی کرد و از تعلق کوتانیان به یهودیان کاست، آنها بدبختی یهودیان را بدبختی خود دانسته بودند و در قیبت تبعیدیان از سرزمینی که خداوند به قوم خود عطا فرموده بود به عنوان نگهبانان قانون مقدس موسی پاستاری کرده بودند. رهبر سیاسی جماعت بازگشتگان، نواده تبار داوود و یوشع، جانشین کاهنان بزرگ و نیز همه مشایخ خانواده های اسرائیلی، تصمیم گرفتند با درخواست سامریان جدید مخالفت کنند اما زر ربابل و یشوع و سایر رؤسای آبای اسرائیل به ایشان گفتند شما را با ما در بنا کردن خانه خدای ما کاری نیست بلکه ما تنها آن را برای یهوه خدای اسرائیل چنان که پادشاه سلطان فارس به ما امر فرموده است بنا خواهیم کرد دلیل سیاسی این تصمیم فرمان کوروش به مصائب نوعی تهدید و جویی مطرح شده بود. ابریان به کوتانیان قدیمی در مقابل هر گونه نافرمانی از دستورات ارباب منطقه یعنی کوروش هشدار دادند. بدین گونه سامریان به کشور خود بازگشتند، کشوری که در گذشته کشور شاهان اسرائیل بود و موسا میراث آن را به قوم خود بخشیده بود. در آن روز، تصمیم بزرگان یهودی که خود را ابزار دست پادشاهی بیگانه نسبت به مذهب خود می‌دانستند، آنها را از سرنوشت جماعت اعقاب ابراهیم، اسحاق و یعقوب ترد کرد. با وجود این، نگهبانان اسرائیل پس از بازگشت به شهر خود ایمانشان کاسته نشد. آنها کماکان خدای ابریان را گرامی می به مقررات قانونی موسی گردن می نهادند و حتی بدون ریاکاری برای معبد اورشلیم فقط به دلیل محل آن اولویتی معنوی قائل بودند. باید دهها ها سال میگذشت تا نهمیای نبی تصمیم یشوع را تایید کند. از این رو آنها بر آن شدند که خودشان معبدی مشابه معبد اورشلیم در شهر خود بسازند. آنها در کوه گریزیم مذبح خود را بنا کردند و در آنجا جداگانه به زبه قربانی هایی پرداختند که برادرانشان در اورشلیم به خدای خود تقدیم می کردند. یهودیان در مقابل غیرت و همیت مذهبی نوکیشان سامریه به تمسخر پرداختند. آنها لجوجانه از اینکه ایشان را از عقاب قبایل اسرائیلی گم شده در امپراتوری آشور بدانند امتناع می‌ورزیدند. آنها را نوکیشان ساده‌ای میدانستند که به خاطر منافع روی به مذهب یهود آورده بودند آنها همچنین به شدت به پرستش کبوتران انتقاد می‌کردند که به ظاهر در قلمرو قدیم اسرائیل وجود داشت شکافی که در زمان سلیمان دو قلمرو را از هم جدا کرده بود اکنون بیش از همیشه پدیدار شده بود و اما دیگر اقوام همسایه یهودیان نیز با مشاهده خرابی روابط میان برگشتگان به وطن و مردم سامریه فرصتی یافتند دشمنی خود را به نورسیدگان مستقیمتر ابراز دارند. گرچه از مبارز جویی علنی با قدرت ایران خودداری ورزیدند. این خدایی که امپراتوری ها را برپا و ویران می کند. زروبابل و یشوع که تقاضای سامریان را برای الحاق به قوم خود رد کرده بودند در وضع دشواری قرار گرفتند و امیدی مردم را فرا گرفت با آنکه کوروش آنها را از پرداخت مالیات معاف کرده بود تا بتوانند به ساختن معبد بپردازند، یهودیان که نسبت به امپراتوری وفاداری سیاسی داشتند، تحت نظر مراقب و هوشیار ساتراپ فرمانده ایالات شمال فرات زندگی می کردند مردم اورشلیم به رغم حمایتی که ایران از یهودیه میکرد خود را آسی پذیر می پنداشتند و بیم داشتند مبادا نتوانند رسالت خود را انجام دهند. اما روحانیان و کاهنان به یک حقیقت ایمان داشتند. خدای حامی بشر و تمام اقوام روی زمین که اسرائیل را برگزیده بود، این خدای بزرگ میتوانست توانست امپراتوری ها را هرگاه بخواهد برپا دارد و هرگاه بخواهد فرو پاشد. این اعتقاد مبتنی بر دگرگونی هایی بود که خاور نزدیک آسیایی طی چند دهه به خود دیده بود. فروپاشی قلمرو قلم روی نینوا شکست امپراتوری لیدی انقیاد تمام ملل منطقه و سقوط بابل بدان معنا بود که خداوند ابریان هوادار قدرت پارس بود و شکست آن همه دولت مقتدر و قدیمی به دست پارس ها جز بدان منظور انجام نشده بود که هزاران یهودی تبعیدی در بابل بتوانند دوباره به خدای جهان ایمان آورند و سرانجام به اورشلیم برگردند و معبد خود را بازسازی کنند. این ترتیب از نظر آنها کورش فرستاده خدای اسرائیل و مسیحی بود که تعالی الهی را شناخته بود. بخصوص به, به نظر ابریان تمام وقایعی که به سود شاه کامل رخ داده بود فقط یک هدف داشت و آن بازسازی معبد اورشلیم بود. در تمام طول تاریخ یهود این خدا سرور سیاست جهان بود و باید گرامی داشته میشد. زیرا سلطنت از آن خداوند است و او بر همه امتها مسلط است. در مقابل عظمت الهی فعالیت انسانها و قدرت طلبی آنها دلیلی ندارد. امتها زدند و مملکتها متحرک گردیدند. او آواز خود را داد پس جهان گداخته گردید. و حجی نبی چند سال بعد ضمن درخواست از مردم که به کار بازسازی ادامه دهند نگاهی نیز به سلسله رویدادهای شگفتانگیزی می اندازد که می توان آنها را مشیت الهی دانست من آسمانها و زمین را متزلزل خواهم ساخت و کرسی ممالک را واژگون خواهم نمود و قوت ممالک ها را حلاک خواهم ساخت و عرابه ها و سواران آنها را سرنگون خواهم کرد و از پا و سواران آنها به شمشیر یکدیگر خواهند افتاد یهوه سوایوت می گوید در آن روز ای بنده من زر و بابل پسر شال تئیل. تو را خواهم گرفت و خداوند میگوید که تو را مثل نگین خاتم خواهم ساخت زیرا که من تو را برگزیده قرنها بعد این تعلیمات در سنت شفاهی یهودیان باستاب خواهد یافت خداوند جهانها را می سازد و خراب می کند. در هر حال اگر ابریان به پیروزی های خود قرره شوند به راه خطا خواهند رفت زیرا این خداوند است که جنگ و پیروزی را برای اسرائیل برمغان می آورد. این کار از اوست. آن آزادی که بشر همیشه در انتظار آن است به همه ملل روی زمین مربوط می شود. این آزادی به معنای فرو ریختن است که انسانها را از هم جدا می کند. پایان بندگی ملل است و فقط مسیح قادر به تحقق آن است. میان دوره ما و عصر ظهور مسیح فقط بندگی ملل وجود دارد. کوروش که تمام اقوام امپراتوری خود را آزاد کرد و به یهودیان حق بازگشت به وطن خود را اعطا کرد بدین ترتیب اراده خداوندی را تحقق بخشید که از او فراتر میرود و بشریت را به عصر مسیح نزدیک می کند. تعلیماتی که یهودیان طی قرون و احسار به آن معتقد بودند، خواستگاه خود را در سیاست کوروش بزرگ باز مییابد که ابزار دست خداوند است. از آن زمان، ملت اسرائیل خطاب به خداوند خیش اعلام می کند ای یهوه، خدای پدران ما، آیا تو در آسمان خدا نیستی و آیا تو بر جمیع ممالک امتها سلطنت نمی‌نمایی.»